یک رانی عزیز و خوشویی است. صلوات نلیبیت خوشحالی لباسی 64 خان نویکتی بیچشده مجموعی هزاری مکریانی حتی نوا خدمتان فرمون لگلمان بن. جاریم کریانی سره گوزشتې ژیانی خويده داتا سرباسی اوې دله صلاح مختدی نصر او به مصطفی زوري شری لبربو بربو کاوا زور رای و آزاداتیو بکاری للاساکرنوي هر کس دی بوې نبو یې نه زور کیفم دهد روج ملا حسن رستگارو ملا رسول پیښنمازی دوکسیان د گل خوين هنه ک تازه لاساب دو جحالبون یکیان اولاوی بو وتیان جو بګره زوخوشه یکیان به تورای هلیداه وتي جان اما بشو به بیره به هزار جان کندن بنو دروانده ها twin زاخ من زخمی بو او گاندرا نه پیمن پی کنن منی کی او هم وصاله لو دور چون کنه کنم لایک بریک سورچید نشته بو ل پر اتو خدره مناناسی گوتم نه و تو کو خدر خدر کونای ناسی متن باله دی و تو خدر جنی بسی دبو بو با گرگ سالان شوی کی داق قلکی کوتبو بو با و به خدری جرند برن هر گرگی بون هستي استوری پیداش کندن خوردنی هر هستي بون منی گوتم ای ماشاءالله هر آوسرشیه گیه کی دامه لاسک دریج گلا و کواری تامی لازکه که زور ترشو وتی او مام ریواسه درمانی همو کرمانه با دکتور محمودم بردو وتی کره دروه که هر جوره کرمه درمانی تیبه تی خوی هيا. پاش چند روش یک وتی ویتی براستی که برا راسته ک همو کرمه یک دا کجه ملاباقی کنه اشکوتی پیدا کرد بو بطنیاتی عجیه نازمم با کی نرد دو دریوش که سر دوفلیقانی استورم ل چقاندو در رام کردو گی من سر تاو خوش ببو نام نبو کن باقی کرد ممالی خوم تانیو رو بر سیبری که خوش بو. دنستم دم خن دوا دم نوسی دوسر مازلا که خمگرو یان قم قماکی دهات دهت برم به بردرکو سریان رادوشن دادگو دریوش ذکر دکن. تاو سبوریم پیاندهد روج یک دو برزنم لابلون چوین پکوتن وتیان های دبی بیان کوژن وتم اوانه دوستی منن هر چی دستن بوبره خوهاور اول اشکوتی كنا باقیده خریقی نو سینوی شعری ملا احمدی نال بندم اگام لدنیا براو تپ پیل سربانک موحات حرام کرد تی دکوی میا ل پر دست کر یک دیار بو بو دستکوشین دریش کروا کرهات بو گیای سربانکم بخوا تی کوت بو تا رامان کشا چقی مرگ کرد پشنیو روان تاوی تیده کرد دا چوما او برکسی بر بو لبندار جگم خوش کرده بو کاری نوسینوام لیده کرد روش یک خشیق لپوشوهات روانیم ماریکی راشا سرمداخست قدر یک دودلمه، ما پشنهات ببردم امده نزیک متریک دور رویشت پاش ماوی یک هات او راز بشوند که خویدا گر روا دگل مر بوم دوست، همو روز ساعت شوار پنج دقیقه کم دهد ساعت شوار و حد دقیقه دگر دا روا قط شوند که تیک نهده دچو آیل لشی و کد خوار دوام امام با مستفای هارم جر روا کاش نهی وام پیدا کرده و هات لام دمان رانی سعد سری وقت مر هات مستفای نامبارک پلمری کی تیگرتو مر و بنوش کداری کوا. هرچی و تم فایده نبو، پوشی کو کرد و داری اگرده، دا. تریکیشی پیدا نکرد، بلام اشناکه میتورد. تا برزنی بو خوی لچه برادوزد بو، بنکه فرمندهی بالا بو. همو باسو خواست شر که لهمو آقاران گرم بو، دهت اویو فرمند لویوه ادره. و کمیشه بیانی اک دیت من برزانی و حوالانی چکداری پاسوانی نمون شر لبرزان تون بو بو. بو خوی چو هرچند دهشته زور بون کلا کاری جبهی او نوایان بریا و آبرد دغل احمد بریار ایمش ده یمچ بچینه بزرن یک چومگوندی خلیفان دوکانی کی هشت پاکت قهوه قهوچوش کم کریو هندی کلوپالیتر کن کنوک دسمن نکون شو همو هوا له ایرانی کن لاش بروینو کووینوا سلیمان معینی که نوی فایق بو زور با دلگرمی باسی فداکاری کردو دی گوت دبی ایما خومان لو شرادا نیشان بدین احمد با سرت پی وتم فایق نویری بی استا بفیال خوی ادزیتاوا وتم دیسان بدبینی بسیا پاش و تویش تو اکی زور فایق وطی کک احمد ایما همومن بچین بارزانو هندل ایران دورکوینوا ادیکی در مانیک کندو چایک جلکیک شتک من بابنیره احمد چاولیه دگرتم منیشوتم راز دکی جاکیپ چه اکارپکا و من دگالت چند برابرک داشتیم و قناد زا آجام من لیت هند به کزور لازمه احمد و تی فایق زورم تجربه کردوی وی پیا به کی زورتر سی او جاری کدگال ه با سعادت هم قلم بو جنیم پیدا اویش سه کسی نرده بود استرگام کلمدن تو دسبجه حالات يو بجتي من دګ جان را چومتفنګم لکه ستاندو با پارانه و دستم له حلګرتن او جګل چې رو کی هات نکد به عراق کمین شمو کا و باش یزانن بره لا قلادت زدانشه بلان برادر ازاکان من مبه فایق سری دغستو بيدنګ بو احمد دو کسې دګل بجهشتو هستای برام خو حافظ فایق دستی د دستی هر خو یې اوش من با قبر محمود کاوانی منوصی بود یعنی اوه برو کشتن اچن دوهی لکاوان پرسی چی روکی هاتنی فایق چون بود با یه او اوبال بم لیخوی او تی که هر جار چند کس یک بویند دگل فایق برو اراغ دهاتین ده لرگه رمز مندانه کبلایت یکتر لشو دا تیبگه اگر لیک بلاو بوین شو لکی بوین خرمه اولاغان هاد دنگ مندان لچاخمه غیتفن گیاند تقهان لیکردینو ایمش تقه من کرده و از پیکین لیکو جرا یکیان بریندار بو حوالیان کرد ایمه قاچاق چین لیمان گرن در روین رویشتن بلاو بوکن حت نوا فایق دیرنی زور من حرا لیکر پاشتا به جوابیده و وطی یو کین وطمن چون ایم حوالی خوتینو دنگ من دناسیو اوش رمزی لائید حرچی کرد من لکن نهات در بجه من هشت مینشم بوی گره هر اشیلی کرده بو، نه در دد کجم، به هزار گیر رونی رو, رو سویند که ایما، حوالی خواتین دری هیناوها تول آمان برودو یک لچی های براندوستو دگر رایم، در منصر کاروانه غیر لگوندیک بناوی سوران دو پیرامیرد پیکاو داوتیان دکرد، گوند چور جحیل لجبن کریک هاتو توا بوکی بو, بو بگویزنوا، کرخریکی آماده کرنی نانی میوانا، د ګلرنانو بابو مامي داود دکن یک دو گریان د ګل پرینو ملی ریمان گرتوا ل داروین دا الکی کی ګم کبوی کبوې نه د زراوتوه منیش د مشکم دا او القاونه لا نو خوښ ناوتی پم لو شو وکړه جاده خلیفان پریموا پیادبوم بوم برادوست حتم مخوار یستا اسپسپیل ب به او هیڅ عقل ب لامه خوځګه برادر چی او القاگومی بابدو زیبا موا که ام شخصیت گرنگا کام دوری یراوا سم برزه احمد توفيق دله اس پک درابو بملا باقي پيچوب ول درګلي گوندي سليمان بگ پاش شو روج بويان هنايو شو ل دشت ماينو بياني ل گوندي سليمان ساوريک منخور دو بتيري ليني وروگين ريزن کمال ملا مصطفي يا دبي بليم ادريس لوي دجيا ديوک حموديهاتي بارزان هول لترسي تيارا کام شب عثمانه ودخلانه هر جنوري چانديبه بر بومبا موشکين اده لقابرستانی که چونه بند در موضوعی که زل میشوله وردکاری کی دکرد نعوذو بله هنده که ترسی وشکمان کوه کرده او اگرمانده که دوکل میشوله بروینه و بتوانین چاو لینین احمد توفیق و حسن ابرازه رویشتن احمد وطی اولی رو بند بزانم کسی که پیدا ناکم خبر و بحثی که پرسم. هر هریستا دیمه او رویشتو نهاته مصطفی و منو خدرناوی کی گورک بدیار دو خالیتر سوچ هانور من زلام یک من لپیدابو. و تو ارن ازان ممنو حاکر تیاره دتان بینه. عقیب یک کوچندین او میشوله یرشن ینای وا. وتم برای تحقیر نبین باب چین ناو آملا شولانه. وتم تیاره لی من وتم کاکا یا تیاره لوخان وا آد یا ندا. اگر لیدا چوزانین راست و احمده کهوه هرچی اگ به بومبان پیلو میشو لکیورانه باشتره اوه رویشتم مصطفا و خدریش هاتن لپشت خانوکه و کدرگاکانی داخرابون کونیک من فیدا کرد چونه نا وطاقه که تخت دامه لیبو با دامه بکین گره تیارش نپسیتا و کاخدر لولاوه وا. کردوا بایکی توند حالی کرد لوله کوری بشی سربان و ریده هد گره زیاده زیاد لپر با درگایکی شاق پیودا واتم احا بخوالی دا که خدر قدو واتی بانا چینا دمچوام نانوچا لیا بخوین مصطفا دیزانی چه باسه واتی لدم چوام میشوله زور و تیارش دمان بینه تازه که تر دیسان لورهی لولکورو تقای درکه هد خدر واتی دا چه مصر چوام با دستنویش رویش تو تاشو نهاته و پشنویشی شوانه که ادریس و پیش احمد توفیق و ملاباقی داوری نوا. تا ساعت دوی پاش نیوشو چکو حرابو بسی دروینه بشو سوتانی دغلان با تیاره خوش اردنوی بروش بو لبیر ما پیرمیرده گوتی آی سوین بخوا هرکس بدل مالی خوای بهی شورش بزانیو اخلاکی بنیتی نانی پیش مرگو بدوریتاوا با تیاره و سوتان نکوه دریش بون کبنوی دوی ساعت دو راستیان کردی نوا ویتان هستن هستن برون لدره خوب شهر نوا دغه مل باقی او مصطفی حچن بن کندالک ل پنا پر دی رزان کلا سر دروست دمچوم راکشین زینی اسپکم کرده سرین کشفکی تازه بو نزانم ام خانو اغل پادشاهانه چون اقلیان بود ونش سرین هر زینو بس نه اله سرت بهیس لا خوار خور منجلی که بچوک چوک برنج نان من دگل خوه نابو. پشنوی جیشیوان که حت نشوین من وتم با دو ساعت رکشا نه امو گوند. جلیر خوشتر نابه. ملاباقی و مصطفهش منوا. برنج شولی من خورد ما بو. سبه پربوبو لمروله. ملاباقی لآیو روبری دان نقوم کرد. مروله قر کرد و دستی بخوهردن کرد. که ایمه دمانگوت نخوین. اویش دیگو بله ایو دا ایک تان خورش تو پلاوی بو حل گرتون. باور که چوار جمیتری لیا خورد همو جارمی رولی لی در دکردن. قراشکه چاپی خورد نوام لیون بوبو، به هزار پارانوا ملا باقی قراشکه اکی تیکل لی حلبوی دامه بابن یک مو کرد وک فیشک دان دملم دا دابو چاپی در دا خورده وا لاملم دانه درنی در زیلی کرد قلاپه ماسی با نیکم تیخستو سر چم ماسیم دگرد. چون که نوکاکی نچم ابو لده ماسی یک یکی خوی لیا ناکرد. دیسان هر جاره ششحو یکم دگردن. بلان بچوک ملاباقی دی برژاندن. ملاباقی چای لیا نا. یعنی کتریکه او دی خسته سر اگر تابو خوی تیری نخوارده اتوا ندکرا بلین ادی ایما. ام جار خوی دیگو امش بو ایوا. هشتانیو ساعتی شودمه چاییلی انا. چند ساله که زور جربه که و بوین فیری بو بوم. هرکس بیگو تایا دا چایی کم دیتور را بو. بو خوی بله ها او چایی بخوره و. جغاری حال دا پیچه دا گل توتن و پر لا قطوه موجزه تکی دا بو. بدگو تایا قطوه دا بو خوم یکی حال دا بستم بر روح سوکی دیده. که بیگو تبا یا ایک یک لو حال پیچه روانم دا با با با با با در دی ګوربو اسپه سپیلک بو لمرګک د بسرا یو فیلم د وست بويره راي ګوزي تياره هميشه لو ناو بو نه زانم بو وبر نکوت بلم تواوک ل تونین دابو یکزي او شلاته نه مابو ل خورین ګورین کتبو فیلسوفانه روج هر فکر اکردو بو بو میش درکردن سرکل کی راوشن شو حاتبونه ګند احمد هاولانی سازدبون لزیه بفرنوا کبارزانی لو بر من وتم من یجدم و تیل همونی اندالین قیاقو کلاک خطرن نبی برای تل بزرگانی نپرسین لوانی لیمان طور وتم هر دشم امجر بو تجربه شرد بی اگر آببردمیو خنکام تازه نپرم وا بکن گورستانی بلده را ببرین کلا بالغ بو پنج شهیدی شری اوروجیان ملاشینی او قارمانی بنو بانگ بو لابیرس شهید کرگ نجی بانی باقیاغ پرینو ل روتان دروشتین نزیق به لیروار بوبوین تازه قزنگ لسرانییه‌دا دا تیار ل آسمان پیدا بون تعوان چرخن خور دوا خومانګند نو درانو بر موشکندین لونداری کی زلزلی پرلکو پوبدا ستار بوین تیار دستین هر حال نه دګر بلای ګورا تر 8 زری بو پی ام بو اخرین ناګر لږ درده پر یو میدان غ راي خردودي سن لتر سن ده ته بندارکه کتهاره هستین پیکرد ليو خومن حشرداوه لو ګل بارانه قاپوره موشک فیشکی کیزل لبرد او کوتنامن مام علي دستي بو برد وتی ويسک بابا سوتا د دانشني بن برد در کوتم چومصر او ګومي لیبو ملم تی کرد د چوي کم دیته و تو خوردن بون چاومله بو جنیک با ماتماته با من دیواره بردیک دا درویشت لبن او حل دیرکوا ببرد حل چو لکونه بردیک لو برزوا بخشی که و حتا خوار سری کابره یک لکونه کوا در چو دیویست خوار شیوا بو حراملی کرد گوتم بچوارو جودی کن دپیش دا, دا لاقان برکه دنا بسر توقی سر دا اکوی یوارا گست منو تر لبن چیائی پیرس کبنگر یا پیدا لا رایی کی نو درو سر جوگه بنکه مندانه شوانه میشوله ورده و تپاکویره حش ریانده کرد حزمین حل جیرابو دستو چاو من لطرسان ده پوشی لسره و که دندو کیان تیده چقاند خوینیان دریانه ترز بودو کل کردن دجی میشوله بوبوا درمانی چاوان با کلاوکم ببنکه پیشمرگان داده گرم دم گود که اکر صندوق سری خودتان به هندیک ترس دست من بگرن اگر ترسی اسپس پی بی وشک بیات تواده تان دموا وقت ترمایی بابی حاملی تشکس پیر دگل بری بیانو کلاشیر خویندن میشوله در روینو امجر نوری تیارو بومباران و مشکباران بو همیشه دوازده تیارو پتر خولیان دخوارد ایران و تورک دگل بعض هاو کار دو دسته ایران و تورکی بنکین لکر کوک بو د انګوت روجانه تیاری انګلیسانیش لقوبرو سعودینو و خو یانی ته دخن تیاری میګو هوکر و مارکی روسی و انګلیسی و ترکیمان دادی با ستان ټوپی ګورو بچوکی صحرای وکرا افسریکی عراقی بقصی افسری چې عراقي 400 ټوپیان وکرا اگردده کاستو پنځم ټوپی ګوربون رادیو موسکو همو شو تعریفی لبرزانی پالوان دکردو با محتی پیشمرګد ده ته خواردې ګوت شوراوی نتواني قبول بکا ام شر زالمانه د ملتک لا جیرانتي او بکره من ګولیا شي شکایت من بوبکا وادر بو ترک او ایران لو فروفی شاتر سابون دستان لیاریدې با بگرانی عزیز و خوشویز، شیدهانی دنیا اکتب لیرد آبام شویه حتی نا کوتایی بشی شست و چواری فوند نو اکتب چشتی مجاوری هجاری مکریانی تا بشی کترو لشوی کتر در پیتندگی نوا شو تن آرام و بخت ور بجین